برای خودتان قهرمانهای انتخاب کنید یکی از با چیزهایی که از کللایتشرر یاد گرفتم قدرت یک مربی بود به این معنی که سریعترین و مطمئنترین راه برای بالا بردن کیفیت زندگی وقت گذراندن با افرادی است که قبل از شما در آن موقعیت بوداند و در آن کار موفق شدهاند. اگر میخواهید به سخنرانی قهار تبدیل شوید با سخنرانهای بزرگ وقت بگذرانید اگر می‌خواهید در کسب و کارتان موفق باشید، راهی پیدا کنید که بتوانید در مصاحبت صاحبان کسب و کار موفق باشید. اگر برایتان مهم است که والدینی فوق‌العاده باشید، بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که زمان زیادی را با مردان و زنانی سپری کنید که فرزندان خوبی تربیت کردند. شما می‌توانید هر جامعه را با قهرمان‌هایی که تحسین می کند بسنجید. همچنین می توانید راجع به یک شخص با توجه به قهرمانهایی که آرزو می کند همانند آنها باشد صحبت کنید. قهرمانهای شما چه کسانی هستند؟ چه کسانی را سرمشق و الگوی خودتان قرار داده اید؟ افرادی که بر روی منهنی شکست هستند، تمایل به پذیرش قهرمان دارند که جامعه در مقابلشان قرار میدهد مانند ستاره های سینما، ستاره های موسیقی و ستاره های ورزشی. مطمئنا من نیز میتوانم این گروه را تحسین کنم اما همیشه از خودم میپرسم آیا می توانم از آنها تقلید کنم؟ در واقع آیا می توانم تحسینم از این افراد را به الگوی مفیدی تبدیل کنم که یادگیریم را افزایش و زندگیم را به جلو سوق دهد؟ اگر اینطور نیست، شاید بهتر باشد که دنبال قهرمانهای دیگری باشم. ما اغلب اوقات قهرمان هایمان را از میان افرادی انتخاب می کنیم که واقعا نمی توانند به ما کمکی کنند. افرادی که زندگی هایشان فانتزیست و ارگوهای حقیقی نیستند. قهرمان های شما چه کسانی هستند؟ از آنها فهرستی تهیه کنید و آن فهرست را ارزیابی کنید. از خودتان بپرسید آیا می توانم شبیه آنها شوم؟ آیا این افراد همان کارهایی را انجام می دهند که من آرزوی انجام دادنشان را دارم و شیوه زندگیشان به همان گونه است که من آرزویش را دارم؟ آیا واقعا می توانند به من کمک کنند تا به شخصی تبدیل شوم که خواهانش هستم؟ برای همه اهدافی که آرزویشان را دارید، به دنبال افرادی باشید که به همان اهداف یا اهدافی بسیار مشابه آنها دست یافتند یا اینکه در مسیر دستیابی به آن اهداف هستند. سپس جلوی خانه‌شان چادر بزنید و هر کاری که می توانید انجام دهید تا با آنها معاشرت کنید. از آنها تقلید کنید و اجازه دهید که درک و تسلطشان بر آن موضوع جذب شما شود. چیزی که موجب موفقیت فوق‌العاده انجمن های گمنام شده است، اطلاعاتی نیست که در اختیار معتادان قرار می‌دهند، بلکه حمایتی است که هم به مسابه یک انجمن و هم به صورت فردی برای معتادان فراهم می‌کنند. وقتی که به این گونه انجمن یا هر نوع برنامه دوازده مرحله دیگر ملحق میشوید به یک مربی یا حامی شخصی و همچنین مجموعه از افراد دسترسی پیدا می کنید که پیش از این به جای رفتهاند که شما قصد رفتن به آنجا را دارید. اگر آنها فقط فیلم و بروشور بین افراد توضیح می کردند و وبسایتی درباره نحوه مقابله با اعتیاد به الکل به راه می و همه چیز به همین جا میشد، گمان میکنید چه تعدادی از افراد با موفقیت بهبود میافتند مطمئنا تعدادشان زیاد نبود البته متادان به اطلاعات نیاز دارند اما چیزی که باعث می‌شود این برنامه واقعا مؤثر و کارساز باشد محیط حمایتی و ارتباط هایی است که در اطراف آن شخص شکل می‌گیرد این موضوع درباره پیشرفت شخصی و هر تغییر دیگری که می‌خواهید در زندگیتان ایجاد کنید نیز صدق می‌کند در انجمن الکلیهای گمنام حامی شما فقط دوست شما نیست بلکه عملا قهرمان شماست شخصی است که جلوتر از شما حرکت میکند و مسیر را با یک چراغ روشن میکند و بنابراین این میتوانید مسیرتان را بهتر ببینید این همان کاری است که همه مربیها انجام میدهند قانون معاشرت شاید شنیده باشید که میگویند درآمد شما تقریباً برابر با میانگین درآمد پنج دوست سمیمیتان است. این موضوع حقیقت دارد و این اصل نه تنها در مسائل مالی بلکه در هر جنبه دیگری از زندگیتان نیز صدق می کند. سطح سلامتی شما نیز به همین نحو با میانگین سطح سلامتی پنج دوست سمیمیتان برابر است. میزان شادی شما نیز بازتابی از میزان شادی پنج دوست سمیمیتان است. پیشرفت شخصیتان نیز احتمالاً با میانگین سطح پیشرفت شخصی پنج دوست سمیمیتان برابر است. ارتباطات، سلامت مالی، نگرشها، سطح موفقیت شغلی و همه چیزهای دیگر زندگیتان نیز احتمالاً بسیار نزدیک به سطح میانگین هر یک از آنها در پنج دوست سمیمیتان است. همه ما این اصل را به طور غریزی و غیر ارادی درک می‌کنیم. زبان ما نیز سرشار از عباراتی است که بازتاب دهنده این موضوع هستند. تو اول بگو با کیان دوستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با هم جنس پرواز. شما میانگینی از پنج نفری هستید که بیشتر وقتتان را با آنها سپری می کنید از جمله در نوع راه رفتن صحبت کردن، رفتار کردن، فکر کردن لباس پوشیدن، درآمد، دستاوردها، ارزشها و غیره. اگر پنج نفری که در اطرافتان هستند، هستند های منفی داشته باشند واقعاً برایتان غیر ممکن است که فلسفه مثبتی داشته باشید. اگر پنج نفری که در پیرامونتان هستند به طور مداوم ناله و شکایت کنند، در گذشته زندگی کنند، برای سختی ها و مشکلاتشان دیگران را سرزنش کنند و عموماً به صورت منفی فکر و رفتار کنند، در این صورت شانس شما برای پیدا کردن مسیرتان روی منهنی موفقیت واقعاً چقدر است؟ نزدیک به صفر اگر دائما با افراد منفی معاشرت و همنشینی داشته باشید داشتن یا به دست آوردن روی مثبت به زندگیتان به شدت غیر محتمل خواهد بود. وقتی که ولگرد ساحلی بودم وقتم را با افرادی سپری می کردم که مشخصا در زندگیشان واقعا هیچ هدفی نداشتند. چند سال بعد، مشغول وقت گذراندن با یک مرد شناخته شده موفق در سطح ملی بودم که رئیس یک فرودگاه مهم بود. آیا تعجبی دارد که چرا مسیر زندگیم تغییر کرد؟ کاملاً هوشیار باشید که چه کسی را سرمشق و الگوی خودتان قرار می دهید این موضوع کاملاً فلسفه و نگرش های شما را تحت تأثیر قرار می دهد و آنها نیز بیش از هر عامل دیگری بر اقدامات شما و چیزهایی که در زندگی خلق می کنید اثر می گذارند. آیا می دانید چرا پرندگان هم نوع با هم پرواز می کنند؟ زیرا همه آنها به سوی یک هدف یکسان حرکت می کنند به افرادی که با آنها معاشرت می کنید و همراهانی که با آنها در ارتباط هستید نگاهی بیندازید. آنها به سوی چه مقصدی در حرکتند و آیا آن مقصد همان جایی است که شما نیز خواهان رسیدن به آن هستید؟ به افرادی که در پیرامونتان هستند نگاهی بیندازید. آیا موفقتر از شما هستند؟ آیا سبک زندگی آنها همان است که شما آرزویش را دارید یا نوعی از زندگی است که امیدوارید آن را پشت سر بگذارید و از آن رها شوید؟ آنها در کدام سمت نمودار برتری خفیف زندگی می کنند؟ بر روی منحنی موفقیت هستند یا منحنی شکست؟ آیا برتری خفیف به نفع آنها عمل می کند یا علیه آنها؟ در 20 سال آینده کجا خواهند بود؟ آیا آنها شما را بالا میکشند یا به پایین هل می دهند؟ این یک آزمون دو گزینه‌ای است، قبولی یا مردودی، هیچ شایدی وجود ندارد. به یاد داشته باشید که هیچ حالت سکونی وجود ندارد. همه چیز خمیده است. همه ما در یکی از این دو مسیر در حرکت هستیم، یا به سوی بالا یا به سمت پایین. معاشرت و همنشینی شما با افرادی که میشناسید، یا شما را در منحنی موفقیت بالا میبرد یا در منحنی شکست به پایین می کشد. از کجا میتوانید جواب این سوال را پیدا کنید؟ یک راهش این است که به موضوع آینده و گذشته یا مسئولیت پذیری و عیب برگردیم. وقتی که شما و آن دوست به خصوصتان با هم هستید، آیا مکالماتتان درباره مسئولیت پذیری رؤیاهای بزرگ و ابتکارات جسورانه است؟ یا صحبتهایتان اغلب در حوالی ایبجویی یا موارد مشابه آن مانند حسادت، نارضایتی و خشم است؟ آیا مکالماتتان بیشتر روی آینده متمرکز است یا روی گذشته؟ این موضوع کاملا طبیعی است که شما با درمیان گذاشتن برخی خاطرات و تجربیات مشترک از یادآوری خاطرات خوشایند گذشته لذت ببرید منظور من به هیچ وجه این موضوع نیست منظورم این است که آیا ارتباطاتتان در بردارنده آینده نگری و احساسی مثبت به آینده اند یا مانند گربه‌ای که قبل از دراز کشیدن و خوابیدن دائما دور خودش غلط می‌زند شما هم وقتی که با هم هستید مدام در مورد وقایع گذشته صحبت می‌کنید اگر ارتباطات شما با شخصی، زمینه عیبجویی دارد و درباره گذشته است، این ارتباطات شما را ناتوان و ضعیف می کنند. اگر ارتباطات شما زمینه مسئولیت پذیری، خوداندیشی و تغییر دارد و اینگونه احساس می کنید که شما را به سوی آینده سوق می دهد، چون این ارتباطاتی قدرت بخش و توانمند سازند. احتمالا این را شنیده‌اید که میگویند همه ما یا در حال ساختن رویای خودمان هستیم یا در حال ساختن رویای شخصی دیگر. اگر کمی دقیق‌تر و بهتر بگویم، ما یا در حال ساختن رؤیاهای خودمان هستیم یا در حال ساختن کابوس‌های خودمان. گاهی اوقات لازم است که از مسیر دیگری بروید. در این دنیا دو دسته آدم وجود دارد. یک دسته آنهایی هستند که وقتی وارد جایی شوند، آنجا را با انرژی مثبت و هیجانشان برای زندگی روشنی می بخشند. من به آنها میگویم بخشنده. افرادی هم هستند که من به آنها میگویم گیرنده که در حقیقت با فقدان هیجان و چشمانداز کنندشان به زندگی هر جایی که به آن وارد می‌شوند را تاریک می کنند. مطمئن شما چنین افرادی را میشناسید. آنها درباره شایعات اخیر و اینکه چه کسی مشغول چه کاریست است راجی می کنند شکایت می کنند از اینکه چقدر از شغلشان متنفرند و دیگرانی را که تمام تلاششان را می کنند که چراغ مصبت اندیشی باشند به تممسخور میگیرند. گیرنده ها و تاریک کننده ها در هنر حوازپتی حرفه و در پرت کردن حواس و توجه دیگران از وظیفهشان تبهر دارند. اگر به آنها اجازه دهید شما را دیوانه و عصبی می کنند. پژوهشگرانی که درباره طول عمر پژوهش می کنند میگویند داشتن دیدگاه مثبت درست به اندازه رژیم غذایی و ورزش کردن عاملی حیاتی در سلامتی و طول عمر انسان است. شما نمیتوانید افرادی را در اطرافتان تحمل کنید که همواره مانند مانعی بر سر راه دیدگاه مثبت شما هستند. من میتوانم فرد تاریک کننده را از صد قدمی تشخیص دهم احتمالا شما هم بتوانید. ممکن است 50 نفر در یک اتاق حضور داشته باشند اما میتوانید آن فردی که هوای آنجا را آلوده می کند و زندگی آن 49 نفر دیگر را تحلیل میبرد تشخیص دهید سالها پیش وقتی که در کسب و کار انرژی خورشیدی بودم مربیی به نام کارول کوک داشتم که همه چیز را درباره صنعت انرژی خورشیدی دانست. او همچنین نکته‌های با ارزشی درباره زندگی می‌دانست و نصیحت‌های حکیمانه ای را درباره افراد تاریک کننده با من در میان گذاشت. او می‌گفت: جفری من این موضوع را اینگونه می‌بینم. در هر دقیقه یکی از آنها متولد می‌شود و نکته غمانگیز ماجرا این است که بسیاری از آنها در کنار ما زندگی می‌کنند. موضوع اصلی این است که شما نمی‌توانید آنها را تغییر دهید." کاری که می توانید انجام دهید این است که از مسیر دیگری بروید این نصیحت ممکن است دلسوزانه ترین فلسفه جهان نباشد اما هیچ چیز ای در این باره وجود ندارد که به خودتان اجازه دهید در گرداب منفی نگری گرفتار شوید بهترین کاری که می توانم انجام دهم تا به دنیای پیرامونم خدمت کنم این است که خودم را در حالتی نگه دارم که بتوانم به بهترین نحو به دیگران خدمت کنم من میخوا وقتم را با افرادی سپری کنم که یک نگرش مثبت واگیردار دارند، کسانی که انرژی و سرزندگی را به سر میز می آورند و اتاق را روشنی میبخشند. ممکن است افرادی باشند که در حال حاضر هفته دو روز را در کنار آنها میگذرانید و باید تصمیم بگیرید که آن زمان را به دو ساعت کاهش دهید. همچنین ممکن است افرادی باشند که فقط دو دقیقه از وقتتان را با آنها سپری می کنید و پی می برید که باید زمان بیشتری را با آنها سپری کنید. متوجه می شوید که گاهی اوقات تنها کاری که واقعا لازم است انجام دهید این است که روابطتان را با شخصی کاملا قطع کنید. این نیز بخشی از قانون معاشرت است. یمان میکنم که درک و پذیرش این موضوع میتواند برای بسیاری از مردم جنبهی سخت و خشن از برتری خفیف باشد. همانطور که می دانید بسیاری از جنبه های دیگر برتری خفیف بسیار ساده و آسانند. اما کنار گذاشتن افرادی که شما را توانمند نمی سازند ممکن است کاری سخت و رنجآور باشد. خصوصا اگر آنها را دوست داشته باشید یا دوستانی قدیمی یا از اعضای عزیز باشند. توجه کنید که منظورم از کنار گذاشتن افراد لزومنی نیست که آنها را کاملا از زندگیتان حذف کنید بلکه ارتباطات سطحی لایق زمانهای بی اهمیت شما هستند، نه زمانهای خوب و با کیفیت افرادی هستند که می توانید دو دقیقه از وقتتان را با آنها سپری کنید، اما نمی توانید دو ساعت در کنارشان باشید افرادی نیز هستند که می توانید دو ساعت از وقتتان را با آنها سپری کنید، نه دو روز را. این بخش از تفکر برتری خفیف نیازمند نوعی یاری قلبی است. داشتن شفقت با داشتن مسیر در تناقض نیست. شما درباره خوبی یا بدی آن افراد قضاوت نمی کنید بلکه خیلی ساده از خودتان می خواهید در این باره صادق باشید که آیا ارتباطتان با آنها به شما قدرت می بخشد و در دستیابی به اهداف و تحقق بخشیدن به رؤیاهایتان به شما کمک می کند یا نه؟ یک گروه همکاران تشکیل دهید. در میان همه کتابهایی که تاکنون در جستجوی برتری و فضیلت با آنها مواجه شده‌ام، شاهکار ناپل اونهیل به نام بیاندیشید و ثروتمند شوید از همه قدرتمندتر و بانفوزتر است. وقتی که از افراد موفق میپرسم کدام عوامل بیش از همه در موفقیتشان نقش داشتهاند عموماً به این کتاب اشاره می‌کنند. در طی 20 سالی که طول کشید تا ناپل هیل کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید را بنویسد، او با بیش از 500 نفر از ثروتمندترین و موفقترین مردان و زنان جهان مصاحبه کرد. سپس مطالبی را که به آنها پی برده بود، با زحمت فراوان تجزیه و تحلیل کرد و در قالب 13 راز موفقیت دسته‌بندی کرد. یکی از جذابترین و سحرامیزترین رازهای موفقیتی که آن افراد عموماً با او در میان گذاشته بودند، چیزی بود که ناپل اونهیل آن را قدرت همکاران نامید. اونهیل می می‌نویسد، هر دو مغزی که در کنار هم قرار می‌گیرند، مغز سومی را با نیروی نامرئی ایجاد می‌کنند که می‌تواند با مغز اول و دوم در ارتباط باشد. او توضیح می‌دهد که یک گروه از افراد همفکر و متمایل به موفقیت می توانند گرد هم آیند و انجمنی بسیار بزرگتر از مجموع تک تکشان را به وجود آورند و بنابراین به طرز شگفت‌انگیزی موفقیت یکدیگر را افزایش دهند او مثال‌های متفاوت از طیف تلاش انسانها در این زمینه می آورد و به هنری فورد و موهاتمگا گاندی در مقام استادان اصل قدرت همکاران اشاره می کند و این اصل را اینگونه توصیف می‌کند هماهنگی دانش و تلاش دست کم دو نفر که در راه رسیدن به هدفی معین با هماهنگی کار می‌کنند. به کار بستن اصول مورد نظر ناپلئون هیل آسان است. اطرافتان را با افراد همفکر و دارای استعدادها و توانایی‌های متفاوت پر کنید. با این هدف که از اهداف همه اعضای گروه پشتیبانی کنید و به طور منظم با این افراد معاشرت کنید. به یاد داشته باشید که همیشه با جاذبه سر و کار دارید. یک در مقابل نوزده. آن 95 پنج درصد همواره تمایل دارند که عیبجو، بدگمان، شکاک و منفینگر باشند. حتی وقتی که نیتشان خوب است، باز هم به شما حمله می کنند و شما را پایین می کشند. قانون معاشرت را به کار ببندید. گروه همکاران خودتان را از آن پنج درصد ایجاد کنید و اجازه دهید که از شما حمایت و پشتیبانی کنند و در رسیدن به رویاهایتان یاریتان کنند. و سرانجام خودتان مربی میشوید. اغلب از من می پرسند چگونه میتوانم به یک رهبر تبدیل شوم؟ در جهانی که همه چیز با فشردن یک دگمه صورت میگیرد، می می‌رسد که بیشتر مردم می‌خواهند بدون طی کردن مراحل لازم برای یادگیری قابلیت‌های رهبری، خیلی سریع و یکسره از مراحل اولیه یادگیری به توانایی رهبری دست پیدا کنند. اما این موضوع به این صورت امکان پذیر نیست. رهبری چیزی نیست که شما انجامش دهید، بلکه چیزی است که به واسطه آهنگ طبیعی یادگیری در شما رشد می‌کند. وقتی چیزی را از ابتدا شروع می کنید، در بالاترین سطح اضطراب و نگرانی هستید. هنگامی که کم کم آن را یاد می گیرید، از طریق مطالعه و انجام دادن، کسب اطلاعات و تجربه یادگیری کتابی و یادگیری میدانی به تدریج و با بالا بردن سطح تسلطتان، سطح اضطراب و نگرانیتان را کاهش می دهید. وقتی که بالا رفتن از آن نردبان دانش را ادامه می دهید، باید به مربیان شایسته و ارزشمند چشم بدوزید و همیشه یادگیری از طریق الگوبرداری را به مسابه جیروسکوپ یادگیریتان به کار بگیرید تا خودتان را در مسیر درست نگه دارید. اگر آن بعد یادگیری یعنی مطالعه کردن، انجام دادن و الگوبرداری را با صبات و مداومت برتری خفیف به کار بگیرید، سطح تسلط شما با گذشت زمان به نقطه ارتقامی آبد که اطرافتان را نگاه می کنید و می بینید که دیگران شما را سرمشق خودشان قرار دادند. شما خودتان سزاوار و شایسته تقلید کردن، راه نما بودن و قهرمان بودن برای دیگران شده اید. خامه به کره تبدیل شده است و سنبل آبی دانش سطح آبگیر تلاشتان را پوشانده است. شما به یک رهبر تبدیل شده اید و حالا خودتان یک مربی هستید. داستان‌های شخصی از خوانندگان کتاب هاوارد سمیت، ماکون، ایالت میزوری اولین باری که اسم فلسفه برتری خفیف رو شنیدم به تازگی دانشگاه و بل کرده بودم و یه نوزاد چند ماهه داشتم. تو اون زمان با افرادی ارتباط داشتم و درگیر فعالیت هایی بودم که حالا ازشون شرمندم. وقتی که همسرم به خونه برگشت خیلی هیجان زده شد که دید به جای دسته کنسول بازی یک کتاب تو دستم دارم و مشغول خوندنشم. امروز با به بستن اصول برتری خفیف تو زندگیم به شخصی تبدیل شدم که افتخار میکنم. هیچ وقت نمیدونستم که با تنظیم و اصلاح فعالیت‌های ساده روزانه به چه چی چیزهایی آدم میتونه دست پیدا کنه خوندن روزانه ده صفحه از یک کتاب خوب طرز فکرم و کاملا تغییر داد عزت نفسم افزایش پیدا کرده زندگیمو خیلی بهتر اداره میکنم و از صحبت کردن روبری مردم نمیترسم حالا مردم نصیحتهای منو دنبال میکنن و میخوان که مربی بچههاشون باشم پسر ده سالهٔ من هر روز پنج صفحه از کتاب برتری خفیف و میخونه تفاوت خیلی زیادی بین اون و بقیه هم همکلاسیاش وجود داره چه موهبت بزرگیه که بتونین به فرزندانتون فلسفه های درست و مناسبی رو یاد بدین که در نتیجه اونا اشتباهاتی رو که والدینشون ممکنه مرتکب شده باشن انجام ندند ما کتابخونهٔ کوچیک و خوبی از کتابهای پیشرفت شخصی داریم و من در پی گسترشش هستم کتاب برتری خفیف نقطه شروع همه اینا بود این کتاب به معنی واقعی کلمه زندگی منو نجات داد حالا من تو مسیرم برای رسیدن به موفقیت هستم و میخوام به دیگران کمک کنم که فلسفه برتری خفیف رو یاد بگیرن تا اونام بتونن تغییر کنن برخی از مردم میخوان جهشی یه شبه داشته باشن. من بهشون میگم اگه از فلسفه برتری خفیف پیروی کنین میتونین هر چیزی رو تو زندگیتون تغییر بدین و آینده شما هیچ شبیه گذشته‌تون نمیشه. این کتاب و بارها و بارها بخونین تو زندگی و کسب و کارتون به کار ببندینش و تحول دگرگونی رو ببینین. نکات مهم اگر می‌خواهید یاد بگیرید چگونه کاری را به نحو احسن انجام دهید، شخصی را پیدا کنید که همین حالا بر مهارت مورد نظر شما تسلط دارد و نزد او شاگردی و کارآموزی کنید. قهرمانهایتان را به دقت انتخاب کنید. آیا آنها همان الگوهایی هستند که می‌خواهید از آنها تقلید کنید؟ دوستان و اطرافیانتان را به دقت انتخاب کنید. همه چیز زندگیتان تا حدود بسیار زیادی بازتاب زندگی پنج دوست سمیمیتان است. <تصفيق> گاهی اوقات لازم است از بند ارتباطات با برخی افراد رها شوید و ارتباطتان را با آنها قطع کنید. یک <تصفيق> گروه همکاران تشکیل دهید و از آن کمال استفاده را ببرید. دو مغز بهتر از یک مغز است و پنج مغز حتی خیلی بهتر از آن.